چند روز بعد از بهبودیم بود یک روز که خسته از مدرسه برگشته بودم کتابم را برداشتم و رفتم توی اتاق خانم جون در آن بعد از ظهرهای سرد زمستانی در حالی که آفتابی کم جان اتاق را روشن می کرد، زیر کرسی خوابیدن عالمی داشت زمستانها خانم جون توی اتاقش کرسی می گذاشت و می گفت ما در این استخانهای پوسیده رو هیچی مثل کرسی گرم نمیکنه. این بود که زمستانها اتاق خانم جون معمولا اتاق نشیمن همه میشد. من بیشتر روزها کتاب به دست میرفتم به اتاق خانم جون که مثلا درس بخوانم. ولی هنوز صفحه اول را نخوانده خوابی شیرین چشمهایم را گرم میکرد. و معمولا این خواب چند دقیقه ای آنقدر طولانی میشد که تا آمدن محمد طول میکشید. آن روز هم پشت کرسی خوابم برده بود که با صدای خانم جون بیدار شدم پاشماده، شما که خسته شدی اینقدر درس خوندی از لحن تعنه و شوخی خانم جون خندم گرفته بود چشمهایم را نیمه باز کردم و نگاهم به محمد افتاد او هم از حرفهای خانم جون لبخند لب داشت و به دیوار تکیه داده بود و مرا نگاه می کرد. با دنباله حرفهای حرفای خانم جون که می گفت مادر حالا گفتن درس بخونین دیگه نه اینجور بچم از ظهر که میاد این کتابت دستش نمی افته که وجودم را پر کرده بود خواب را کاملا از سرم پراند در حالی که صاف می نشستم و موهایم را جمع می کردم، با خنده سلام کردم محمد همانطور که با نگاهی مثل نگاه معلم ها به شاگرد تنبلشان نگاه هم میکرد گفت: سلام، خسته نباشی؟ خانم جون دوباره گفت: خسته که در خودشو کشته بیا ما در جون بیا بشیم پیش خانم زرنگت یه چای بخور خستگی در بره ببینین استراحت چه مزه داره که این خانم شما ازش دل نمیکنه. محمد در حالی که خندان کنارم می نشست به شوخی گفت خانوم جون من که نیستم شما وقتی می بیاد زیر کرسی نذاری. خانم جون گفت که خوابش نبره ای مادر قربون شکلت آب دستی توی چهریختن فایده نداره اینجا نخوابه میره توی اتاق خودش من با حالت قهر و گلایه گفتم ای e, خانوم جون خب خسته بودم. شما چرا با حرفای محمد گوش کنی؟ بعد در حالی که اخمهایم را توی هم کرده بودم رویم را از محمد برگرداندم. خانم جون با لبخندی شیطنتبار گفت ببخشید خانم. از این به بعد میگم دیگه حرف حساب نزنه. بعد رو به محمد گفت این از این خانم خانوما اون از اون یکی. الان امیرم بیاد صداش در میاد. اون که دیگه حالا اگه درس نمیخونه، حداقل پا زیر پا نمیگیره تنش راحت بشه. منظور خانم جون به علی بود که همیشه مشغول تکاپو و جنب و جوش بود. محمد رو به من که اخمهایم را توی هم کرده بودم گفت: میتونه چند روز دیگه تا امتحانا مونده؟ حالا این چند روز اگه از شما خواهش کنم با همه ی خستگیتون شبها زودتر به و روزا به درست برسی امکانش هست؟ خانم جون، شمام قدیما حرف هاجاقا رو اینجوری گوش میکردیم؟ سر درد دل خانم جون باز شد ای مادر، جوانای الان چه میدونن زندگی یعنی چه؟ سختی چیه؟ روزگار یعنی چه؟ شوهر کدومه؟ راحت و حاضر و آماده، همه چیز هست، نمیفهمن از کجا میاد، چطور میاد، واسه همینه این چهار کتاب اینقدر مهم شده، همه باید پس برن، پیش بیان، بلکه این شغل قمر انجام بشه. زمان ما کجا و زمان شما کجا؟ همین عباس، بابای اینها. نصف سن اینا رو هم نداشت که از صبح علت تا بعد غروب توی همین بازار عرق می رخت و کار میکرد. خدا شاهده، هنوز قدش به پیشخون مغازه نمیرسید اونم با اون های اون زمان که مثل شمر سر تو می چرخوندی کتک بود و چوب. استها اگه مزد یدشون می کتک نمی رفت. اون بچگی کجا و اینا کجا؟ الان اگه به این علی آقا بگی مادر نونت هست، آبت هست، همیچی حی و حاضر، این چهارتا تا کتاب چه کاری داره که زیر بار نمیری بهش بر می خواره. ولی همین باباش خدا میدونه با چه خونه جگر این و برو یاد گرفت. خدا اشاله عمر با عزت بهش بده. عباس همش نه سالش بود که باباش به رحمت خدا رفت. من موندم و یک بچه و یه مشت آدم خدا نشناس و یک دنیا مشکل. من یک دفعه پرسیدم. راستی خانم جون چرا فقط آقا جون رو داشتیم؟ تا آن روز هر وقت این سوال را می کردم، خانم جون می خندید و می گفت، آخه من یک کذا بودم. ولی آن روز چون احساس کردم خانم جون دوست دارد حرف بزند، دوباره این سوال همیشگی به ذهنم رسید. خانم جون با لبخندی کم رنگ در حالی که از چشمهایش معلوم بود دارد به گذشته ها فکر می کند، گفت، والا چی بگم؟ آخه من زن دوم نصرالله الله خان بودم. پدر بزرگم را می گفت. می دونی وقتی من شوهر کردم چند سالم بود؟ دوازده سالم بود و نصر الله خان سی و هشت سالش بود. من که برای اولین بار این حرف را می شنیدم از حیرت دهانم بازمانده بود. با بهت گفتم. چند سال؟ خانم جون خندید و گفت. نه نکه حالا فکر کنین اون خدا بیا پیرمرد بود. نه بابا، خیلی هم سر حال و جوون بود. من خیلی کوچیک بودم. همانطور حیران پرسیدم. خب حالا چرا با این همه اختلاف سن ازدواج کردی؟ خانم جون آهی کشید و گفت. والا مادر، قصهش درازه. من اصرار کردم و محمد با نگاهی که یعنی شاید خانم جون دوست نداره بگه نگاهم کرد. اما خانم جون گفت. میترسم شماها حوصله‌تون سر بره. ولی بالاخره با اصرار من خانم جون شروع کرد. من خیلی کوچیک بودم که مادرم به رحمت خدا رفت و پدرم دوباره زنگ گرفت. خب هیچ زنی هم چشم دیدن بچه شوهر رو نداره. از طرفی هم زن پدرم جوون بود و هی پشت هم بچه می آورد. اون دوره و زمونه هم مثل حالا فراوونی نبود. پدر منم وضعیتی نداشت، یک کاسب جز بود که صبح تا شب یک لغم نون میرفت و خونه نبود. سند بابایم هم خدا بیامرزتش تا اونجا که میتونست به من ظلم میکرد و بازم چشم نداشت ببینتم. شوهرم رو هم خودش پیدا کرد. از فامیلهای دور خودشون بود. زنش سرزار رفته بود و سه تا بچه داشت. خدا رحمتش کنه. خود آقا هم وقتی منو دید قبول نکرد گفته بود اینجای بچه منه ولی زن زنبابایم ولکن نبود اینقدر سعی و تلاش کرد واسطه فرستاد سن من رو بالا برد و چک و چونه زد تا به قول خود اون خدا بیامرس آقا رو از رو برد من اینقدر سن و سالم کم بود و چشم و گوشم بسته که اصلا نمی دونستم شوهر یعنی چی منتظر بودم ببینم آخرش چی میشه. بلاخره زن بابایم هم آقا رو راضی کرد، هم پدر خدا بیا مرزم رو. یک روز یک آقا آوردن خونه، یک قوار چادری، یک قوار پارچه، یک کله قند، یه ظرف باغ لوا با یک انگوشتن. سیقه رو خوندن و بغچم رو زدن زیر بغلم که با نسر الله خان برم. من از سن و سالم درشتر بودم، ولی خب عقلم هنوز بچه بود. خدای شالا که نور به قبرش بباره نصر الله خان هم درست مثل یک بچه من برد خونش آنقدر صبر و حوصله کرد آنقدر ندانم کاری هایم رو تحمل کرد تا بالاخره بعد از دو سه سال یواش یواش از آب و گل در اومدم و تازه میشد اسمم رو گذاشت زن خدا خواهی بود که بچه های نصر الله خان رو مادر بزرگشون قبول کرده بود اگه نه با اون عقل ناقص من خدا عالم اوزا چه جور میشد خلاصه رفته رفته هرچی عقلم رسید به هاجاقا علاقه بستم. آخه ننه آدمی زاد بنده محبته. منم که خدا وکیلی مزه راحتی و تم محبت رو توی خونه هاجاقا چشیده بودم توی این دنیا فقط دلم به هاجاقا خوش بود. چشم های خانم جون برق خاصی می زد. معلوم بود هنوز هم با یادآوری گذشته عشق به موجودی که جای پدرش بود وجودش را پر می کند. بعد از چند لحظه خانم جون آهی کشید و ادامه داد. ولی اونجا زن بابا ولم نمی کرد. هر چند وقت یک بار می اومد خوب گوشت تنم رو می و میرفت. هر وقت می اومد توی دل منو خالی می کرد و می گفت پس چرا بچه دار نمی شی؟ اینجوری پات روی پوست خربز است. حاجی سه تا بچه داره. یعنی عرضه بچه دار شدنم نداری؟ بالاخره حامله شدن ولی بچم نموند. غیر از عباس خدا چهار تا بچهگی دیگه هم بهم به داد که نموندن. به دنیا که میومدن نارس بودن و از بین میرفتن. خدا می دوونه واسه هر کدوم چقدر گریه میکردن؟ و اون خدا رحمت کرده چقدر نازم رو میکشید و دلداری میداد تا بالاخره 24-5 سالم که شد خدا عباس را با هزار نظر و نیاز بهم به داد دیگه هیچی کم هم اون روزا دیگه پسرای هاجاقا بزرگ شده و رفته بودن در حجره پدرشون دخترش هم دیگه شوهر کرده بود روزگار خوبی داشتیم که یک دفعه سربند یک ندانم کاری شاگردا پچ و انبار حاجقا آتیش گرفت. یادم رفت بگم حاجقا توی کار نخوب هم ببود. خلاصه مادر شعله اون آتیش به زندگی ما هم گرفت. یک دفعه اوضاع ما از این رو به اون رو شد. اون روزا پول توی دست مردم مثل الان فراوون نبود ارزش داشت. چون که افتادها جیور شکست شده اعتبارش کم شد داد و ستتها خوابید و طلبکارو صف کشیدن. هیچ ما در در عرض یک سال ورقه زندگیمون برگشت. حاجاقا هر چی تلاش کرد و به هر دری زد کارها جفت و جور نشد. خونه رو فروختیم که بلکه فرجی بشه ولی فایده نکرد. حاجاقا از قصه کمرش خم شد و خونه نشین شد و دنبالش مریض خدا شاله که نور به قبرش بباره همچین که مریضیش طولانی شد یواشکی از بچه هاش یه خونه یک خرید و به نام من کرد و گفت من اونا رو سر و سامون دادم بعد از من تو این بچه سرگردون میشین روزهای آخر انگار خدا به دلش بندازه که رفتنیه هی حلالیت می‌طلبی و میگفت تو بچه بودی به پای من سوختی. حالا من که برم با یه بچه تو چه می و خدا میدونه که من چی کشیدم. چشمهای مهربان خانم جون نم اشکی برداشت و ساکت شد. انگار دوباره داقه از دست دادن جاقه برایش تازه شده بود. و من که از قصه خانم جون و از شنیدن سرنوشتی که بار اول بود کاملا از آن با خبر می شدم، گلویم را گرفته بود. بی اختیار دست محمد را محکم گرفتم. گیج و متحیر یک لحظه فکر کردم. اگر روزی محمد را از دست بدهم یا وقتی پیر شدم محمد زودتر از من برود. با خانم جون احساس همدردی کردم و عشق چشمهایم را سوزاند. حتما پدر بزرگم هم همانقدر برای خانم جون عزیز بوده که محمد برای من. اصلا تصورش را هم نمیخواستم بکنم. خانم جون آهی کشید و ادامه داد. یک زن جوون با یک بچه نه یاوری نه پشت و پناهی. خونه داشتم ولی خب خونه رو که نمیشه خورد و پوشید. آدم زنده زندگانی میخواد. آقام یک سرداشت و هزار سودا با شش سرائله. دیگه اگه هم نمیتونست کاری برام بکنه. زن بابام هم از ترس اینکه من یه وقت فکر کمک از آقام رو نکنم همون اول آب پاکی رو روی دستم ریخت. من هنوز جوون بودم و هاچاقا نگذاشته بود آب توی دلم تکون بخوره. حیرون مونده بودم و نمیتونستم باید چه کار کنم. خدا شاهده از تنهایی یعنی از شب و تنهایی توی اون خونه چقدر میترسیدم. شب تا سبییدهی صبح اشک میریختم و بالای سر عباس که خواب بود مینشستم تا سحر میشد. حالا که یک وقتها عباس از ترسو بودن مهناز ناراحت میشه بهش میگم مادر دست خودش که نیست. اینم رس و میراس مادر بزرگشه که به این بچه رسیده. اون روزا خب من از حالای مهناز خیلی بزرگتر بودم. یک بچه یه هشت نه ساله داشتم ولی توی اون خونه بعد از هاجاقا، و برام میداشت شب تا صبح چشمهایم مثل جوخت باز بود تا بلکه آفتاب بزنه و هوا روشن بشه این که میگن زن چراغ خونه است اشتباه مادر خدا هیچ خونه ای رو بیمرد نکنه که اگه کرد صد تا چل چراغ هم نمیتونه روشنای اون خونه باشه زن اگه چشم و چراغ هم باشه به پشتیبانی مردش و دلگرمی اون پکسری خلاصه از اونجا که خدا یاره قریبونه، همون روزها خونه کناری ما رو فروختن و یک همسایی جدید اومد که خدا ایشالله اون روزی که همه حیرونن دستگیرشون بشه و رو سفیدشون کنه. آره مادر، این همسایی ما که یک پیرزن و پیرمرد بودن، شدن برای من پدر و مادر و مونس و یاور و خلاصه همه کس. اگه گفتی اسم اونا چی بود؟ به من خیره شد. من با تعجب و فکری مقشوش همونطور که اخمهایم توی هم رفته بود سعی میکردم حواسم را جمع کنم که خانم جون خندید و گفت <تصفيق> دیگه این که اینقدر فکر نداره حاج رحمت و بانو خانم خدابیامورس دیگه بابا بزرگ مادر؟ خانم جون سرش را تکان داد. بله خدا خواست که اونا سبب خیر بشن و دست من بگیرن. حاج رحمت واسطه شد و عباس رو گذاشت بازار. در حجره حاجقاسم حاج قاسم بلورچی که تاجر چینی و بلور بود. و حالا این بچه چی کشید تا شد این حاج عباس موسوی که رویش توی بازار قسم میخورن و این اعتبار رو به هم زد فقط خدا میدونه و بس. همون سالها بازم حاج رحمت یک زن و شوهر مطمئن رو پیدا کرد و دو تا اتاقهامون رو بهشون اجاره دادم و یک خورد زندگیمون سر و سامون گرفت و دیگه تنها نبودم. خودمم یواش یواش پیش بانو خانوم خیاتی و یاد گرفتم و بعضی وقتا برای در و همسایه خیاتی می و شب و روز هم دعا به جون حاج رحمت و بانو خانوم میکردم. اینه که مادر یه وقت میبینی صد پشت خریبه برای آدم از خواهر و برادر بهتر میشه خلاصه زندگیمون کم کم رو به راه میشد و عباس تقریبا 17-18 ساله بود که از بخت بد یا نمیدونم از اونجایی که هر که در این مقرب مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند داماده حاج رحمت که پدر همین ملیه خانوم باشه دور از این خونه و شماها درد بد گرفتو. ناغافل از بین رفت بیچار مرزی خانوم موندو و تا دختر که دومیش همین عروس خودم بود خلاص مادر مرزی خانوم که اومد خونه ی ها جاقا از اونجا که دردمون مشترک بود شدیم دوستهای جون جونجونی و خب بعدش هم که معلومه عباس بیست و سه چهار سالش شده بود و گلویش پیش این ملیه خانوم گیر کرده بود منم که جونم برای ملیحه و خانواده‌اش درد میرفت مستأجرمون رو جواب کردیم و ملیحه خانم از خونه حاج رحمت اومد خونه ما و شد عروس گل من بعد هم پا به پای شوهرش زحمت کشید و خانومی کرد تا زندگی شد اینکه حالا هست هرچی خاک مادر و مادر بزرگش است عمر ملیحه باشه مادر جون همه ی خانومی و بلند نظریه مادرت به اونها رفته. بعد رو به من اضافه کرد. دیگه از اینجا به بعدشم که خودت دیگه میدونی و معلومه. من که قرق فکر و خیال هنوز در حرفهای خانم جون قوته میخوردم و به اون خیره مانده بودم، با تعجب و گلایه پرسیدم. چطور تا حالا اینا رو تعریف نکرده بودین؟ آها. همینو میخواستم بگم اولا که مادر تو کی پرسیدی که من بگم بچه ها فکر میکنن پدر و مادرشون از اول پدر و مادر بودن و زندگی همین طور بوده که اونها حالا دارن می‌بینن. تو خودت تا حالا اصلا پرسیده بودی که من نگفته بودم بعد از اون مادر بابات یک ای بی داره که دوست داره از اونجا که خودش سختی کشیده. شماها رو لایه پنبه بزرگ کنه. همش میگه سختی رو خودشون میرن توی زندگی میفهمن. حالا نمیخواد قصه گذشتهی ما رو بخورن. اینم که حالا امروز من سر درد دلم باز شد به خاطر حرف تو بود که واسه یه مدرسه رفتن و اومدن میگی خستم و تازه تو برای شوهرت توی هم میکنی که چرا حالا که تا غروب خوابیدم به هم مجدگونی نمیدی. مادر والا به خدا قدر زندگیتون رو، این راحتی و جوونیتون رو بدونیم. خدا شاهد زمان ما زندگی اینجور نبود. مرد باید واسه یه لغمنون نون از جون مایه می و زن اصلا نباید حرف میزد که اگه کاسه جای کوزه باشه بهتره. چه برسه به اینکه که توقع کنه مثل شما واسه چهار تا کتاب نازشو بکشن. زمان ما یه خشگه میخواستیم به زندگیمون اضافه کنیم سختی ها داشت و داستان ها هم در نمیومد. از هزار تا یکی هم اسم طلاق رو نشنیده بود چه برسه بیاره؟ اما حالا همین که عروس و داماد میگن بله عروسی و خرج عروسی پای پدر داماد است همه ی وسایل زندگی پای پدر عروس. خونه هم اگه ندن که و جانی بشینین بالاخره اول و آخر بازم کمک اونهاست هیچ. راحت. هلو بیا برو تو گلو. تازه میرن نمیتونن زندگی کنن. چرا؟ فوری میگن تفاهم نداریم. این به من گفته بالای چشمت ابروست، اون به من گفته پایین عبرود چشم است. خب اینا برای چیه؟ همین دیگه همین که میگم. وقتی همه چی حاضر و آماده و زحمت نکشیده بیاد دست آدم، معلوم که باید دندون اسب پیش کشی رو هم شمرد و از اون طرف هم آدمی آدمیزات سرگرمی میخواد. حالا که نباید پی زندگی به دوه انگشت به زندگیش فرو میکنه و پی عیب و ایراد میگرده. از قدیم گفتن وقتی نه درد داری نه بیماری جوالوز به خودت میسنی و مینالی. الان اگه زمان قدیم بود، شما جای اینکه ور دل من زیر کرسی خابیده باشی، با دنبال بچه ها تو شام شب و قصه نهار فردا میدویدی. اسم اومدن شوهرت هم که می اومد، زهرت میرفت که هنوز کارهایت رو به راه نیست. من معترض بودم و محمد خندان که خانم جون با خنده و چشمکی شیطنتبار به محمد ادامه داد. اینا رو برای شما هم گفتم آقا، اینقدر به زنت آسون نگیر. چه معنی داره زن زنتا غروب بخوابه دروغ میگم؟ محمد با خنده از ته دل با خانم جون هم داستان شده بود و من در حالی که با سر و صدا و شلوغی مخالفتم را اعلام می سعی داشتم با نشگونهای محکمی که از بازوی محمد می گرفتم ساکتش کنم. که خانم جون خندان گفت بفرمایی، حالا دیدی؟ بدهکار هم نشی خیلیه. اینه که مادر بهت میگم زنت رو نباید انقد لوس کنی دیگه. آن روز چقدر حرص خوردم و خانم جون و محمد خندیدند. آن شب در حالی که محمد داشت مسئله هایم را حل می کرد یک دستم زیر چانهام بود و در ظاهر به حرفهایش گوش میکردم ولی حواسم جای دیگر بود. پیش حرف های خانم جون. و گذشته‌ی عزیزانم که من تازه به آن پی برده بودم و در جواب سؤال محمد که پرسید یاد گرفتی یا نه با گیجی سرم را تکان دادم چند لحظه نگاهم کرد بعد در حالی که خودکار را زمین میگذاشت و کتاب را میبست گفت نه خیر نفهمیدی نه بعد دستم را از زیر چانه ام برداشت و صاف نشاندم خب حالا میشه بپرسم به چی فکر می کنی؟ دست پاچه گفتم هیچی به خدا داشتم گوش می کردم. بدون اینکه چیزی بگوید ناباورانه و سرزنش آمیز توی چشمهایم خیره شد فهمیدم فایده ندارد و در حالی که سعی داشتم خودم را به مظلومیت بزنم که به سر به هوایی محکوم نشوم با یک لبخند تسلیم شدم و گفتم خیلی خوب به حرفای خانم جون و نمیشه به من بگی به حرفم گوش نمیکنی تا برای خودم مسئله حل نکنم. با نگاهی پر از شرمندگی نگاهش کردم و گفتم ببخشید، معذرت میخوام. خندید و گفت خوب یاد گرفتی سر و ته قضایی رو با یه نگاه مظلوم و یک ببخشید هم بیاری نه؟ خوب حالا بعد از این همه فکر به چه نتیجهی رسیدی؟ در حالی که دوباره توی فکر فرو می رفتم، گفتم اینکه که خانم جون و آقا جون چه زندگی سختی رو گذروندن همین؟ خب آره؟ پس خوب فکر نکردی اگه خوب فکر می کردی خیلی چیزای دیگه هم دستگیرت گیرت می, می دوباره درس رو شروع کند که پرسیدم مثلا چی؟ خودکار را زمین گذاشت روی صندلی جابجا شد و رو به من نشست و گفت مثلا اینکه آدم باید بخواد تا بشه و بتونه خانم جون میتونست راه آسون رو انتخاب کنه بگه تنها کسی رو ندارم چه میدونم؟ جوونم و همون کاری رو بکنه که معمولا همه میکنن و با اولین کسی که پیدا میشد ازدواج میکرد ولی نکرد و یا مثلا وفاداری؟ وفاداریی که یک زن میتونه نسبت به شوهرش داشته باشه حتی شوهری که دیگه نیست وفاداری به محبتی که دیده و سالهایی که کنار همسرش گذرونده که با وجود جوونی توشه باقی عمر طولانی خانم جون شده یا اینکه عشق سن و سال نمیشناسه همونطور که در مورد خانم جون نشناخت و تونست با عشق به کسی که میتونست جای پدرش باشه زندگیش رو پر کنه اونم با علاقه اینقدر محکم و پاورجا. پس باز هم نتیجه میگیریم آدم وقتی چیزی را با تمام وجود بخواد قادر به انجام هر کاری میشه و از همه ای اینا مهمتر، تر تلاشیه که به دنبال این خواستن به وجود میاد. همانطور که خانم جون تنها به پشتوانه محبت به شوهر و عشق به فرزند و مهر مادری تمام تلاشی را که از دستش بر انجام داد و موفق شد. این نشون میده که صبر و تلاش و استقامت بالاخره به سمر میشینه و و واضح ترین و مهمترین نتیجه هم اینکه خود شما خانوم خانوما چقدر توی زندگی جلویی و خوشبخت و اون وقت با انگشت به کتاب اشاره کرد برای خوندن این بنده تا این موقع شب باید نازتو بکشم که اونم تازه لطف کنی و اگه دلت خواست فقط با دقت گوش کنی؟ چرا نفهمیدم؟ چرا گل خوردم؟ مقصر خودم بودم یا اطرافیانم؟ اطمینان از محبت بی انتهای آنها بود یا نداشتن دغدقه از دست دادنشان؟ یا اصلا عادت به همه آنچه داشتم؟ بدون اینکه احساس کنم هر کدام از داشتههایم به تنهایی گنجی گرانبهاست چرا گوشهایم نمیشنید و چشمهایم نمیدید؟ مدتها زمان لازم بود که بفهمم آنچه می شنویم و میبینیم مهم نیست؟ مهم وجود خود ماست و توانایی درکمان و اینکه چطوری نگاه میکنیم؟ همه نصایح و حرفهای پخته دنیا وقتی ذهن خام و کور باشد به کار نمیآید؟ همانطور که در مورد من نیامد؟ تا زمانی که روزگار به جبر چشمهایم را بینا و گوشهایم را شنوا کرد و وقتی فهمیدم لذت بردن از نادانی بهایی بسیار گذاف دارد که خیلی دیر شده بود